جلسه 26 قواعد فقه و سیاسه محسن عموزشالی امام سلام علیه السلام گروه فقه و سیاسه 14 ده هزار هفته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلالله علیه و سیدنا علی و, سیدن و نبینا عبد محمد و علیه اهل بیت الطهارین المعصومین سیام و الله فل عربین روحی بر و هلا علمی الله الفدا با تعرکل بر خدای متعال و ترسول به پیامبرگرامی و اهل بیت الطهرالله مسلاهم باعث می‌شود درباره قواعد ادامه قبلا ناش شد که قواعد در فکرشی آرامتر از فضای اهل سنت توسعه پیدا کرده قواعد مرحوم شهید که بعد در نزد القواعد فقهی هم به برجسته شد و یه مقداری مدل دیگه پیدا کرد و شهر پیدا کرد اهم از قواید فقیز قواید اصولی کلامی یا هم درش هست ولی دیگران آراماران توصیح می دادن به ویژه می رسیم به مرحوم کاشفل قطع یه چند تا قوایده تحسیس می کنند. گوی و مرحوم نراقی چهل تا قوایده اضافه می فرمان از دو دوتا قوایده ولید فقی رو به بحث می زارن خود بلد فقر رو به اونا دو قاعده مطرح میکنه همه بزرگواران دیگه میرسیم مرحوم میرزا حبیب کاشانی اگر مرحوم کاشانی اسم کچیکشون تردید کردم شاید میرزا حبیب الله یا چیز دیگه او یکی مستقصا مدارک قواعد مستقصا قواعد یا مستقصا مدارک دو تا عنوان کتاب دارن اسمشون هم همیشه فراموش اسمش کمی دشواره خدمت شما از این دو تا کتاب نوشتن به 500 تا قاعده رساندن در معرفت شناسی که در نرم افزار وجود داره من لیست قواعدی که کار شده در قسمت نمایش شده در بردم فکر میکنم حدود 800 قاعده یا 900 قواعده لیست شده بود در چاپ بعدی که توصیه بیشتری دادن نمیدونم اونو هم طبیعتا ممکنه بعضی قواعد بیشتر بشه خب از قدیم به تناسب مباحث قواعد مورد توصیه قرار میگرفته ولی بعضی قواعد طبیعتا بیشتر دامن زده شده بعد در مورد قاعده مسلحت یه مقداری نیاز به بحث بیشتریه قاعده باید اون موضوع و حکمش دقیقا شفاف بشه یه معنای عام ما داریم که مثلا مراد ما برفض از بحث مسلحت یعنی اهم و مهم باشه تقدیم اهم بر مهم بعضی جاها ها خب این مفهوم اهم و مهم میتوانه در سه هیته باشه سه هیته تضاهم و مسلحت تضاهم مفسده و مفسده تضاهم مسلحت و مفسده این تعبیر عامه اهم و مهم یه جایی مثلا میگیم دفع افسد به فاسد خب میشه یه قسم از اینو قاعده مربوط یک قاعده خاص متعلق به یکی از این سه دسته است قاعده مربوط به مسلحت و مسلحت خب میگیم آقا یکیش مسلحتش بیشتره اینجا ممکنه چند تا قواعده شما پیدا کنید در مورد قواعد مربوط به مفاسد همینطور قواعد مساله و هم همینطور تا ما یه مروری کردیم هفت ذابطه برای تظامن ببینید مسائل از منظر آقای عبدالمجید از سوسو و که تر از دیگران دیگران به این نظم شفاف بحث نکردن اینچون چارچوب کتاش به این سگانه است و زیر سکانه ای هم هر کدوم از این سگانه ها، این هفت موردو به ترتیب بورده البته چون اثباتم نکرده اول کار به چه دلیل این هفت ها به ترتیبه یکی از نقدها میتوان مربوط به این باشه که آقا این هفته رو شما اول اثبات بکن واقعا بعد از یک بر سراغ دو اگه دو مساوی بودن بر سراغ سه یکی از نخت ها مرهود به اینه یکی هم حالا جزئیات دیگه هم داره اجمالا این دسته اول رو عرض کردیم دسته دوم هم مشابه مت تعابیرش رو حالا با مثال ها اگر میخوایم بررسه کنه وقتی بیشتر میبره مرتبه دوم در و اعل حکمان. یکی از دو این حک رتبهش بالاتر باشه از جای خود حکم یکیش حرام باشه کی حرام تر اگر هر دو مساوی بودن میان ببینیم رتبه کدام بالاتره کدام مفسده بدتر رتبتا رتبه, رتبه هم یعنی چیز ضروریات و حاجیات و تحسینیات اگر هر دو ضروری بودن یا هر دو حاجی بودن یا هر دو تحسینی نگاه میکنی ببین نوع کدامش بدتره در و اهل نو هر دو مثلا مالی هن هر دو جانی هر دو مربوط به مفصده ناظر به دین هن. اگر هر دو مف... مساوی بودن نگاه میکنیم ببینیم ببخشید هم نوع بودن نگاه میکنیم ببینیم زرر کدامش آمتره به تعداد بیشتری زرر میزنه اگر دیدیم این مث... مثلا ماشین ترمز بریده اگر به دست چپ بره پنج نفر رو میکشه به دست راست بره پنج نفر رو میکشه خب اینجا هر دو اح... هیچ نیستند اگر مثلا پنج نفر گوز... پنج تا گوسفند بود با یک آدم طبیعتن باید برگردیم بگیم نه. حفظ آ... آنو رتبه اون رتبه سوم اونجا تفکیک حاصل شده به چهارم دیگه نمیرسیم میگیم اینجا یه آدم کشته میشه اون طرف پنج تا گوسفند کدام رو بزن بکش پنج تا فرمان اون طرف به چرخان حفظ آدم اهمیتش بیشتره این علل مخزدهت آن اگر یه طرف مالیه یه طرف جانیه خب میزن این طرف دیوار خانه خراب میشه با حفظ آدم پس یکش نوعش اهمیتش بیشتره در و اعلل مقصد و نوعنه. اما اگر هر دو دیوار بود هر دو انسان بود یک... خب میاییم نگاه کنیم ببینیم اعمال مفصدت این کدامه اگر این طرف بزنیم یه تیر برق میزنیم اون طرف دو تا تیر برق خب این یکیش اعمه اگر بیایم بگیم که آقا هر دو مصابیه ولی یکیش ضربهش بیشتر میخوره اکبرول مفصدتا قدرن اگر به اون, به اون یکی تیره برق بخوره اون مفصداش کمتره این تیره برقه مثلا از این برقای شلووله اما اون طرف برقش دکله میزنه برقه یه شهر رو قط می‌کنه. این اکبر و مفسده حالا وی یه نوعی هم ممکنه شما به عمل مفسده تاین ولی فرض کنیم حالا اهم نباشه مساوی باشه اگر اکبر و قدرن نبودن هر دو مساوی بودن از جهت میزان خسارت میزان مفسده نگاه میکنیم ببینیم ذره کدامش طولانی ات اطول و زمننه. اون قبلی هم چی بود تعبیرش این بود علاقه عدوم اونجا بود تعبیرش متفاوت بود ولی ادوام از نفعن این هم میگه چی عدول و همون هم همون مراده مرتبه سوم میگه آقا یکی از مفصده ها قطعیه یکیش احتمالیه اگر هر دو مساوی بودن خب حالا نگاه کنید ها اون یه نقد بود که من عرض کردم آقا خیلی از اینا هم حکم به, به چه دلیل شما اینا رو مرتب کردید شان توضیح نداده مرتبه دوم چرا بر اساس الان ابن مرتب کرده آیا همه اینا پشت سر همه بعضی از اینا نمیتونه جلوتر بیا مثلا اونجایی که رتبه ولی هر دو مثلا مساوی اند اول کار ما تحاکد و تحقیقن رو نمیشه بیاریم به چه دلیل نرابردید خب شبیه این و نقط های دیگه شبیه این درود آده مقصد است پس اینجا قاعده مشهور در المقصده در اول اولام جلب المسلح المف... همی ها اینجا منتا این رو من که استقراء کردم در فضای شیعی علمای شیعی بعضشون فرمودن که این, این کلیت نداره این قاعده خب این رو هم در نظر داشته باشید و دوباره همون اعلا, اعلا حکمن اعلا رتبتن اعلا نوعن اعمو اعموهما اکبرهما قدرن اطولهما زمنن آکاتهما تحققن این خلاصه در اینجا لحاظ شده خب این یه بحث مهمی بود بعضی از مواردی که قبلا فقط یادآوریم ما قبلا کردیم که بعضی از موارد ببینید تو فضای شیعی ما ارس کردیم که تقدیم واجبات بر مستباط و مباحات و مکروهات که شیعه هر دو دارن ولی شیعه اسم دیگه نمیزاره تضاحم تق... اون قسمت حکمی اینه اون رتوی اولی که بودن تقدیم واجهات بر مستبات که اصلا اسمشو نمیذاریم تضاهم تقدیم خب محرمات بر مکروهات اینم همینطور اما در وجوبات در واجبات و محرمات و اینها دیگه اون اهم و مهم رو باید در نظر بگیریم یه تعبیر دیگه برای اینجا کمک میکنه برای اون قسمت اول که حکمان متفاوت باشن تعبیر احکام آور و غیر الزام آور، یکیش الزامی غیر الزامن یه مستبکی یکیش واجبات عکیده و واجبات غیر اکید مقابلش گناهان کبیر و گناهان صغیر اگر تضام بشه بین یک گناه کبیر و یک گناه سغیر چه کار میکنید؟ خب اون مثال مشهور آه یه مثالی هم که میگه هلقی و تو اشد من از الان اینجا ای این به چه معناست این رو دوستان تحلیل کنن اگر تزاهون باشه بین غیبت و زنا آیا این جمله که گفته میشه غیبت و عشدومه از زنا معنیش اینه که اگر واقعا شما مثلا شمشیری رو گردن شما گرفتن قیبت بکنید یا زنا نوزو بله این رو دوستان تحلیل بفرمایند اگر بخواهیم در واقع رو ما یه عالم ملاکات داریم این تداوم ملاکی رو بخوایم در نظر بگیریم که مقداری اهل سنت به اون عالم کشیده شدن وقتی که یه مقداری بحث مصلحت و مقصده رو بیشتر دارن مطرح میکنن درسته الان توی سو صحبت گفتم اول بحث سراغ حکمی ولی در موقع الان فضای شیعی خیلی نمیرن سراغه ولی ولو اینکه ما از عبارت قبل خاندیم اعتراض آجا علی اندی دوست رو هم خوندیم گفتن که شما جناب اطلاع در مقام استنباط میگید که ما با مصلحت افزاده خیلی نمی توانیم کار کنیم ولو ملازمه عقل و جهلو داریم اما بیاید خواهشن شما که در مقام امتصال تزاهم شناسی استفاده از عقل رو روا می دارید اونجا هم بیاید استفاده کنیم که ما اونجا ارز کردیم خود همین قسمتش هم جای تردید داره چقدر عقل می توانه چقدر نقل می توانه یه ترکیبی باید در مجموع بکنیم خب حالا این الگویی که ما عرض کردیم حالا می‌خوام تahr کنیم ببینیم خدمت بزرگواران چه نقدی به این قسمت دارند این پس اجمالا این چند تا کلمه رو هفت تا کلمه رو بنویسید منتظر ضرب رو در س بکنید حکمن رتبتن نوعا اعم امیت قدرن زمنا تحققا این هفته رو باید داشته باشید خب بزرگواران بفرماید چه نقدی به این دارند آیا واقعا تحققا آخر کار اطول و زمنا آخر کار این وسط از این هفته کدام بود؟ اعم بود قبلش نوع حکمن ردبتا نوعا بعدش قدران زمنا تحقیقان برای یاد سپاری دارم ارز میکنم خب شما بفرمایید که اگر دارم با این کار نداشته باشید منطق این الگو رو در نظر بگیرید این حسن این الگو این که میگه تو مرحله اول هر کدام از با فلان شاخصه ارجح بود اون مقدمه اگه مساوی بود میره سراغ مرتبه بعدی این کمک خوبیه حالا شما با این کارتون نباشید خودتون بخواید بندی بکنید رتبه بندی میکنید در سُلطنامه پیامبر صلی الله علیه و آله علی و ذکر شده که آقا قبول فرمودن بسم الله رو حفظ کنم به جهت مصلحت بزرگتر که مصلحت بزرگتر چی بود اتمام جنگ و امنیت مردم الان این به چی میخوره؟ آمد. کدامی از این شخص ها میخوره؟ این مسئلت نوعیه خب این یا و اسم توان اسم خب من ب... میگم این مسیر رو از برگردانیم اون روشی که آقای سوسو و اون طب اون روش پیش بیاره آقای سوسو وام به وندیه چیز کرد یعنی ببین الان ما مورد به مورد میگیم اگه شبیه این مثال اگه بیست مثال بخوایم بیاریم میگیم این مساله این طوریه اونی که اون طوریه بعداً قبول میکنیم اما اونی که مهمه این سیره چون ما یه دونه مثل... شاخص که نداریم شاخص ها رو شما بشمارید بعد ببینید کدام مقدمه بفرمایید بله یه ویا ایدیوژیون تناموژیون دیگریم که با من اهم و همه در در در نظر در نظر در این هایی که داده میشه به این برمیگرد به هیچ کنون هیچ کنون نظر اون مسادی متفاوت این چون مساد متفاوت و میشه و چانه این خواهد خودی میدارد خودی به نظر اما خب ببین آخه ما, ما, ما چجوری تشتیز داده میشه و اینکه که اهم بوم هم تربونه هست پستاده میشه این به یه سنده عاوسته نیسته روی این همه این سنده عاوسته کنار همزید میگه بشه این بیر نیسته این مقدمه برای این مقدم فیلم استاق ممکنه که مورد تو باشه از مرو در محمدی یکی باشه همین هم میتونی شما رو بگیدیم از این پس محکم کل در حوض آباد نه نیزیم نیست بعد یه چیزا کنیم از کدوم از این ها رو مثلا توی افتایی مرسادی مثلا مالی یه مالی یه افتایی مالی اقتصاد توی افتاییم مثلا عبادی یا. اینا تا انطازه اینا هم بعضی اون رو که فامیه تفاوت‌های دو این که فابط هست ما هم من پیشنهاد میکنم اینجوری نرید اهم مهم همه اینا مصادیق اهم مهم بود بعداً بودید که معیار مهم یعنی در واقع عدم معیار اون احکم مهم که ما قبول داریم اما می‌خواد بگیم خب در موارد مهم. متفاوت کدام حکم کدام مهمه از جهت نه نه سب یه کاری که تعجب ندارم یه کار خوب یه این خوبی که ایشان داره انجام میده یک کار خوبی که ایشان انجام میده بحث های تجربی هم همین رو میگیرد ببینید مثلا توی کشف قوانین تجربی یک روش مهم و حاکمانه که بگن آقا سعی بکنید متقیرها رو به یه حالت خاصی برسانید به سکون برسانید از تغییر در واقع فقعی متقیر داشته باشید دیگر شرایط رو مساوی بگیرید الان ایشان این کار کرد بعد آمد گفتش که حالا اگر این دو در واقع مساوی باشند چه کار میکنید من به نظرم شما دارید توقف میکنید اول باید بیاید اولا یه نکته که این هفت مورد رو بود ممکنه شما میگید درد هست پایه برد بعد یکی که میخواید منطقه کنید شباید ساده کنید همزمان نگید که قدم اول نگید که این از این جهت مهمه اون از اون جهت بلکه یکیشو صاف مصاوی بگیرید که ببینیم اگر این کارو نکنید نمیشه به نتیجه برسید آقا این ترجیحات آقا یه سری ابزارن چت بات هست که شما به مناسبه اون فیچر رو کارو بندیج. برید توی تو چهوه عبضا آچار بیست و از همه داشه در باز خب ببینید به چون خب اگر مگات ببینم آیه چون آیه ابراهیمیه آیه مهری کدوم بود بار هر دو باز میکروفون من نفهمیدم کدام صحبت می‌کنه اجزایی هست پس تصور اولیه هم, هم درست دو تا من شما که دو تا هستی من تا بعد میخوام از کنم که باز هر طریق کنیم باید ما برای اینکه به یه برسیم باید فرض بگیریم که اینا مساوی هن بله در عالم بیرون نمساوی هن یکی از جد اهمیت داره یکی از اون این اگه این طور ما بخوایم پیش بریم اون زوابط رو نمیتوانیم به دست بیاریم اگر شما فرض بگیری زابطه که زابطه که به واقعی را شما نه توی زابطهی قرار که یه نزوی خودم درست کن یه قاعده درست کنیم که تر در را ما این قاعده میشه دیگه تر سپاگی انجام میشه فقط این هزار که کنیم چلا این درست این واقع شده قاعده من که این شر دی که که توی تجربه این دا میکنن اون مسائل تجربی واقعا این توی خارج اون مسائل و اون کارو موبیطش درست میکنن واقعا این کار رو انجام میدن. و بعدا این مسائل دیگر رو اینا خل این تجربهکن ما اشکال نداره ببید. مسائل فقهی هم فرق. مسائل مختلف داره دیگه. آلم فهم ما مسئله جدا بگیریم واقعا تر خوب هم داره دیگه میدیم آقا الان من میگم که شما داره ترموز ماشین شما بریده یه طرف یک انسان قرار داره یک طرف پنجام تا بوسفن میزدید پنجتاش رو پار میکنه کدام کاره قدمه حفظ انسان بر حفظ ایبان مقدامه یا نه سدر نات. تو اسو رو ببین که وسط رو هر روز نزدیم بکشیم. الان توروزم بریده یه طرفی آدم واساده، یه طرفم در است، یه طرفم 50 اوسفند. شما حالا سادش کنیم اون در رو هست کنیم که خودمون بیفتی که بچیدی که حفظ جان خود یا حفظ جان دیگران الان شما الانترون هم یه مسئله ای. الان حفظ جان خود حفظ جان خود یا جان دیگران ماشین بیزنید با اون برده خدایی را میچرمانید به تای در از جهت شمیه ها چون چه انجام میدید کار نداریم از جلی همیز جان خود یا همیز جان دیگران خود کتون اراده توش شدیم ما اراده شد در قدر شبه اند تو شاید قدر, قدر, قدر اون هم میشه چرا شما خودتون میده اون فرق نید مهرم که دا صحوت ما در دره حتما با کشته خواهی شد خب ممکن با اونم بزن اونم حتما کشته نشد ممکن با زنی پاش بشه با اون بیان را برای در فهمون با کشتران اونم بساسه الان اون به حتمی و بیره حتمی رو ایشان برده ملاک هفته هم کرده درسته؟ بعد خود این که الان حفظ جان خود یا حفظ جان دیگران این یکیه روتبه جان نوهش هم یکیه درسته الان اینجا یه خلال داره این مثلا گفتش که یه حفظ در واقع رفتش سراغ چی گفتش که اگر رتبه یکی بود میریم سراغ بعدی اینجا نگید از شما نیست، شما هم دارید انجام میدید اگر الان هر دو حفظ جانه بعد از حفظ جان شما چه کار کنید؟ نگاه کنید، ببینید جان چه کسی درسته؟ دارید اینجا رو مطلی کنم تر... این روت... رو تحقیق رو قبرم بگید که... نه نه نه نه نه نه, نه. بگم که فروش آقای نوروزی که اصلا رایت و شما هم یه کمی تایید شاید بیارتون بود اگر یه طرف انسان باشه نه نه توی نه انسان کدام؟ ببین الان اگر یکی حفظ جان باشه یه طرف حفظ مال اینجا میشه بگیم حفظ جان؟ لا لا؟ خب نمیش که یه حفظ جان مفتر دسته ماله ماله بگیم با جام پس الان الان اینجا دیگه میارهای دیگر گذاشتی کنار دیگه نمیگید که مال بزرگتر از انسانه اهمیتش مثلا بیشتره قبول داری؟ پس الان نبیرید سراغ قیمت و این آدمو اون با اون پول مقایستش کنید پس الان اینجا ترتیبه قبول کردید میگید آقا این رتبهش مقدمه میگید خب باشه الان کاری خواهد آنین اما من این سیم و فیدیو درشتیم مثال راستن این کاری تاجاری هر طور من و احساس آجازه نداره فسا هر طور بایده نیست بله آفرین الان الان این بیان شما بیر در این مستان و اگه با خب وقتی نه خب با کله با کله نه خب همین مثال شما باشه که باز یه مالیاتی داره دیگه چه یه مالی چه اون پاره بشه بسوزه فغزه بس در حدش 80 رو خب چطور خصوصات کنید آفرین الان یه مقداری اومدین سر اون اول بحثی که من عرض کردم من همین Yes. نا نگید اصل. تا یه جایی ببینید تا یه جایی میشه ببینید بگو این که الان جان مقدم باشه بر مال تو یه شرايط چه قبلی کردی همون دو دسته بکنید ببینید که اگر مثلا جان یه نفر باشه جان دو نفر باشه خب اگر بیشتر باشه خب حالا اصل ایده که من حالا آرام آرام این برمن درس یه تکمیلایی هم عرض کنم که یه وقتی بحثا نگرد تو حلقه سالین اگر بخوای بس کنیم یه پیش. پس اصل نکته ما میخواستیم ارز کنیم که یه چارچوب بحثی ما میتوانیم اینجا داشته باشیم فارغ از این هم قدها قدها یکی این که قواعد مربوط به این تظامه مثلت مثلت رو شناسایی کنید برید اینجا مقصد و مفسده رو بیارید اینجا مثلت و مفسده حتی بعضی معورد رو من نمیشته بودم حالا در دستم نبود گشتم فایل هایی که در دستم بود اینو میخواهم جامعه تر عرض کنم دو سه مورد هست کردم ولی این یک نکته یکی بحث های دیگه هم اینجا هست اگر یه چهار پنج دقیقه اجازه بفرماید من بعضی بحث های دیگر رو کنم بحث های خیلی زیادی داری یک نکته کلیدی من از اون میخواستم این قسمت رو سره تر برم. از بیانات وزیع هم استفاده کنیم تا رو بحث های قبل یه نکته کلیدی امتنام ام. امکان کس را امکسار اینا در مقام امتصال آیا ما این مثلت مقصده رو یکاسه بگیریم یا محدود بگیریم این یه بحثه حالا اگر ترسم اینا رو وارد بشم میمونداریم خدمتش رو ارز کنم سنگیتر بشه توی این قسمت مراتب و مساله بعضی موارد رو من عرض کنم که اینجای که حفظ، بحث حفظ دین و لزوم تقریم حفظ دین و حفظ،, حفظ نفس و حفظ مال بعضی موارد یه موردی که می بگیم در احکام امتنانی مثل تقیه، اکرار، نفی عرج زرر استناد تو این موارد اشاره شده که حفظ دین مقدمه در فرماشت علما از جمله مثلا حضرت امام در بحث تقلیل مفهوم الله لنگرانی فرمودن اما ام تبورند ترکیم نمتقه طولانیه ببینم می فهمند اما حدیث و نفی زرر فقط زکرنا فیلی سور انهو لیس نازرن دلال احکام المجمولت شرعیت و نفیل لل احکام زررین بله نما و حاکمون سیاسیان اسلامیون صدر من النبی صلی الله علیه و علیه و, علی و سلم به ما انهو حاکمون و سلطان این رو می که احکام این نفی ضرر حکم سیاسی حکومتی حالا دیدگاه حضرت امام، اما نفی حرج و بحث رفع و اینها می فرماید حاکمیت بر سایر عدل اولیه دارن ادله اولیه که برمی کرد حکم هم واقعی هستن ولی این تمسک به اینها از حیث حکومت حالا بحث اصولی شد این یه مورد اون قسمتی که مربوط هست خالصه از کنم می و من زلبا یه بحث آلا ادامه بحث لازرر و اینها از بحث حکومت و اینها داشتن می فرماید در این موارد یه سری از این موارد ما از بحث تضامن مختزیار داریم از این منظر باید استفاده بکنیم میفرماید که فعلا تلاش می‌ندازیم که این اوضاع الهام مسلمان تخریب و الحرام قبر رسول الله عليه حبس شهران اخذ من بدل و یاجوز لوح توسكا که توسط کن و بعد ظاهر فی مرغای توجه اله حکومت متیکل ادلالو ادلاتو تو این تو موارد نباید شما بگید که آ اینا ادلشان حکومت داره نه اینا اصلا تفاهم یه جایی مثلا فرض کنید ما ناوزو بهلا تخریب بیت الله حرام میخوایم کنیم یا دیگر موارد اینو زامی بحثش رو میبرن توی عالم دیگه و از بعضی از این موارد مربوط به این طور روی تحلیل های دیگه می یا مثلا می ادله عدله اکراه مثل عدله امتنانی دیگه مثل تقیه، ضرر استرار اینا شامل مثلا بقول های مثل حفظ اسلام مثل بعضی از احکام اسلام و اسلامی نیست که شارل رسول بنا احتمال داره نه اینا وادیشون متفاوته پس این بحث ها رو اما فضای اهل سنت بعضی از اینا رو یه نزدیک به این گایی میبرن یعنی یه جوری دین موارد یه سری مستندات برای تقدیم دین بر نفس نفس بر مال اینها اوادیسی برش هست مثلا امام از باب تبرک ارزم کنه یکی دو تا این در موارد ارزم کنه اون تبرک بحث تقدیم بر دین بر جان،, جان بر مال امام علیه علیه السلام در سفارش به اصحابش دارن که من اون یعن با سلامت و دین ای این روایت رو از امام صادق علیه السلام که فرمودن در وسیعت حمیدن مومن علیه السلام هست تقریباً چار خطه اعلم انال قرآنهو دل ليله و نهار و نور و ليله المظلمه من جهد و فاقت فا اذا حضرت بلیت بلیتون انبالكم دون انفسکون فجعلو انوالکم دون انفسکون اگر فاقی جن... یه مشکل پیشبیا فاقی پیشبیا یه بلیه پیشبیا اموال ای... رو فدای خودتون بکنید و اگر نزلت نازلتون فجر انفسکون دو دین کن اگه یه رخداد پیشبیا شما خودتون خلاصه در قوال دین قرار بدهی خود رو فدای دینتون بکنید ولم اندال خالک من حلک دینو ولی حریبا من غربم دینو پس شما این نکته اصاسیش فجعلو انفس کن دون دین کن یکی هم فجعلو انبال کن دون انفس کن اگر بلیه پیش بیام خودتون رایس کنید ولی امبال رو در راه حفظ خود بدید و خودتون را هم برای حفظ خب این رقایت حالا در منابع دیگه یه اومده و محوم فیز کاشانی اینا دارن تحت این عنوان مبانند لایفت لایفتن و فی دینه و در دینه و بل غنا اصلا سال وسائل تیز زده با حجوب بزل مال دونن نخص بلعظ و بزل نفس دونن دین خب پس این نقطه مسئله که داره هم در ذهن نشن فهمه دوستان هست یه امر ارتکازی و اقلائی و اینهاست اما چونکه در فضای معاصر معمولا در فضای مقاصد این حرفای حفظ دین و حفظ نفس و اینا رو از بحثای مقاصدی معمولا مطرح چه چه بسه ما فکر کنیم حالا در حصوص خودمونی نیست نه شبیه رو هم ابن شروبه حرانی همین, همین رواید رو به صورت مستند از حضرت امیر زیر میفهمند و قال اضا حضرت بلیتون فجع الو امبالکم دون انفسکون و اضا نزلت نازلتون فجع الو انفسکون دون دینکون و علاو انال حاله که من حلک دینون و الحريبه من صلو دین نم در دینو علاوه اون لو فقره بعد الجنه و لو هنا اون فقرات دیگه نخوندن مرحوم یه فقراتی وردن همین هم بدل از قران بدلای میارن این دو سه قسمت رو هم میارن ای بعد اینجا ای به این دو تصریح شده حالا بحث سند و اینا هم که دیگه بحث دیگه ایه بیشتر لازمه بحثه بحث ترجیح سلامت دین و صحت بدن نسبت به مال روایتی هست من اون کولینیو گردم به عنوان باب سلامت دین سومین روایت. میفرماد از علی جفعه علیه سلامت و دین و صحت و بدن خیرون من المال بل مال و زینت و من زینت دنیا حسناتو خب حالا اینم بعد یه جایی بحث کنیم ادمات ترجیح مثلا اگر خیر بود یا اون جلبه تو اشد دو اینا رو چیکار کنیم کدام از اینا بیانگر ترجیحن یا خیر که داریم میگه یه توصیف فقط یه توصیف داره میکنه میگه سلامت دین صحت بدن بهتر از سلامت مال آیا از این توصیف که میگه این بهتره ما در واقع رحنبون میشیم به اهمیتش آیا از اینا میتوانیم استفاده کنم برای فرسند و اینا درست باشه از جد دلالی. آیا از اینا میتوانیم استفاده کنیم برای بحث ترجیحات یا نه؟ مرموم شیخ رامالی هم این روایت رو عنوان نخستین روایت از باب وجوب و بزل ما دون نفس و الارض و بزل نفس دون دین از مردم کلیمی میارن خدمت شما مرز کنم بعد حدیث مشابه عملتی براش میارن مرحوم کلینی مرحوم شیخوله مرحوم شیخوله آمالی هم هم رو میارن حالا بحث دلالی میشه برای این کنیم و موارد دوری خب آقا دوستان تیبه این از باب تهمون و تورد ولی سایر موارد رو به نظرم باید ما در کارهای پژوهشی تمام این مسائل رو در بیاریم همین ابهاماتی که دوستان فرمودن فرمودن که چه واسه در بین اینها نتوانیم ای ما یه قاعده کلی به دست بیاریم خود این که می توانیم یا نمی توانیم بهتر خیلی خوب بحث بشه اگر بتوانیم قواعدی به دست بیاریم قاعده عام که هم و, و مهمه متوا با اون مقدمه چینی که بنده از داشتم های کلی نه غیر از این های الا تطبیقی اگر در واقع شاخصه ار بتوانیم از نسوس در بیاریم مرحوم نایینی خاطرتون از چهار تا زوابط خیلی کلی فرمودن ولی اینکه خیلی کلی طبیعتا استفادش هم کمتر میشه اما اگر ما زوابط جزیتر بتوانیم در بیاریم حالا آه. اگر به اون قواد جزی بگیم زوابط طبیعتا خیلی بهتره حالا ممکنه شما بفهمید نمیشه خب همینطوره همطور هم که بنده هم اشاره کردم اون بحث مثلا در علم اول منفع یا مسلحه رو بعضی از علموشی من پیدا کردن که فرمودن که این قاعده کلی نیست خب اگر بتوانیم اون مصادیقش که میتوانه خارج بشن رو در بیاریم قاعده رو دایده رو محدودتر کنیم ولی قاعده ببانیم خیلی خوبه توی این موارد هم به هر حال این مهمه مثلا آیا اون هفت موردی که این آقای سوسوه گفت آیا می به صورت فعل جمله مثلا قاعده مطرح کنی مستندات میخوام حالا ما در مقام اصل طرح و ایده بودیم اصل این که غیر از اینکه یه مورد یه مورد قاعده در بیاریم رسیدن به یک الگوی جامع ترکیبی اگر مثلا نگاه کنید من فکر می کنم الگوی ایشان یه مقداری از یه جهت به ما کمک میکنه نوع الگوسازی با مستاقش کار نداریم حال و بعضی جلساتم با دوستان من خودمم هم هایی داشتم دیگه فعلا اونا رو نکردم مستاق مستاق به ویژه خود این ترتیب که یه بیان دیگه برای اون فرمایش دوستانم میتوانه تلقیبش که این اینجوری چرا همه رو با هم کن. اما این نکتهش به هر حال مهمه که داره تلاش میکنه چند تا قاعده رو با هم مطرح کنه اولا سه وادی کرد این سه وادی کردن خیلی کمک میکنه اون قسمتی که شوخی و جدی خدمت دوستان از کردم رساله بخواید بنویسید این نکتش این بود اون این که اگر بخوایی مثلا ما رساله های عمله داشته باشیم فکر میکنم آخر هر قسمتی هر بابی هر فصلی کلی مسئله تضاهمی ما داریم که جای ترهش هست تک و توک در رساله های عملی متاسفانه مباعث تضاهمی رو می نسن. البته نوشتن بعضی از مسائل در رساله می توانه موجب بدفهمی بشه مشکلاتی درست می کنیم مردم رو هره هره مصحب ممکنه بار بیاره نه که فقی اشتباه میکنه در اون حکمش نه مردم چون که جامعه برار با احکام سرکار ندارن اون که در رساله آموزش داده بشه چون آموزش ناقصه ممکنه بدفهمی ایجاد کنه اون یه لحظه دیگه است اما در مجموع ما باید ذوابت رو بدانیم مثلا یکی از بعد مسائل کاروردی بسیاری داریم الان یه بحثی که معمولا مطرح می‌کنم به عنوان سبک زندگی من به نظرم اگر این بحث تضاحمات رو ما خوب در بیاریم در معاملات در عبادات در سیاستیات یه خیلی کمک کار ببین الان مجلس یا با سوق خودشون باید بیان عمو مهم بکنن دولتی ها با ذوق خودشون حتی مجموعه تشکیل مثلت با ذوق خودشون ما کارمون چیه؟ اینکه اون ملاک ها ولو ملاک های احتمالی نه رو دستبنده کنیم بعد بریم ببینیم از نحسوس و از عدل عقلی و از سایر ادله چی میشه به دست بیاریم بعد اون محتملات اولیه رو شبیه برس های تجربه که میگن فرضیه در نظر بگیرید ما صرفا هم اونوان فرضیه در نظر بگیرید به این حرفایی که در فضای اهل سنت من خیلی جا خوف دارم حتی بنده خودم خیلی از این منابع من اهل سنت رو خیلی شاید به اندازه من بعضی بحثار رو کسی استقرار نکرده. اما کتاب ها و پی دی اف هایی که من دارم خیلی معمولا بود دست هر کسی نمیدم چرا؟ چون که همین محتملات بدون نقد و بررسی هرفه ای و دقیق میتوانه یه ذهنیت های که شسرفته و قشنگ باشه خیلی ذهن رو میتوانه خراب بکنه. لذا من خودم حالی ترهم میکنم معمولا دوستان تشویق میکنم به نقد و بررسی لذا یه نقد عامی که من در اینجا داشتم این که خود این سیر قشنگ هست اما باید مستند بشه باید مستدل بشه خود سیرش بعد تک تک اینا آیا عمومیت دارن یا نه خود این تر البته یه قیدی زده از عمومیت یه مقداری انداخته ولی باید ببینیم اون قید زدن کفایت میکنه یا نه به چه صورت قید زده به این صورت که گفته آقا اگر مثلا در صورتی که اون فرض قبری با هم مساوی باشن نوبت بعدی می‌دیم. در واقع فرض تصابی نوعی محدودسازی و خلاصه محدودسازی قید دست. خودش یه مقدار این کار رو انجام داده. اما از اون وار ممکنه بگیم شما بیش از اندازه یه جایش هم محدود کرده باشید. یعنی شما پایش تا چیز رو مساوی باد فرض کنید تا برسید آخر کار به مثلا آکت بودن. آیا آکت بودن نمیشه بیا رتبه به سوم. بعد آیا گزینه های دیگه نداریم؟ اگه گزینه هرچند اینا گزینه های معمولی که همیشه بهش توجه میکنیم کنیم. الان یه مسئله که ما داریم در زندگی شخصی واقعا تش تلاش میکنیم این اهم و مهم رو تطبیق کنیم برای خلاصه اهم و مهم چه گزینه‌های دیگه هست اگر احتمال داره بیاریم خود ما نگاه میکنیم بگیم مثلا اون مثال که من عرض کردم این مثال مبتلابه همه ما هست منم هم, هم بوده مثلا تابستان ماشین رو کجا پارک کنیم الان اگر بخوایم زیر آفتاب پارکی بکنیم خب گرما ممکنه خرابش کنه ولی ما ترجیح میدیم که بعد از ظهر که برگشتیم حتی ماشین خنکی باشه خب ببینید اینطور مثالهای جزئی بیاریم تحلیل رو کنیم در ذهن خودمون بعد حتیل امکان ببینیم خودمون چه کار میکنیم بعد دقت کنیم با نگاه در جده ببینیم آیا این ملاک ها یه نظمی در ذهن ما داره واقعا اول چی چیز رو دقیقت میکنیم ازن همون مثال ترمز بریدن اولین انصور چیه؟ این قسمتش به نظرم میتوانه با این الگویش قسمت اولش سازگاری داشته باشه چون اون خیلی شفافتره اگر مثلا حفظ دینه، حفظ جانه بر حفظ مال, جز... حتی در مال جزئی ترجیح داره میرسه به یه حفظ مال خیلی بزرگ به قله آجای ابرایمی، آقا مثلا تو اون الگوی برجام خب ببینیم آیا اون نقض داره میکنه یا نه از یه باب دیگه نقضش نمیکنه اگر مثلا پس یه جایی تا یه قدامی ممکنه اون ترتیبه قابل تحمل باشه ولی یه جایی نباشه این خلاصه خود جیت ترتیب خلاصه باید معلوم باشه بعد خود اونها آیا عمومیت دارن یا نه ولی اینکه خودش از عمومیت طر اندازه انداخت چون گفت اون فرضهای قبل مساوی باشن اما تحقق پذیری تحقق پذیری این موارد خیلی پیچیده است چون اینقدر زندگی ما پر از تضامن هست که به هر حال برای هر موردش میشه مثال پیدا کنیم ولی نکته اساسی تحقیق پذیری تصاویه تصاویه در مرات در واقع زبابط مختلف اونم یه جایی میشه اگر تصاویه نبود ایشان داره میگه آقا سراغ اون بعدیان نبود اگر مثلا رتبهش مقدم بود اصلا سراغ عمرودن و عطوان بودن و, و آکت بودن اینا میگه اصلا نباید بریم اینش یه مقدر ببینید این الگویشان یه مقداری درسته هفتاست ولی نمیگه همه جا هفتا رو پیاده کن ببینیم ما یا چون این حرفی میتوانیم بپذیریم یا نه اصلا کلش رو به هم بریزیم مثلا بکنیم دو الگو بعضی موقع من ذهن هم وسوسه میشد مثلا اینها رو تو دو جدول بیاریم آیا توانیم مثلا تو دو جدول نه اون ستا رو بکنیم دوتا منظوریم که همون هفته آیا مثلا اون آکد بودن حتما باید بره مرحله آخر یا از یه جایی دو شابهی بشه دومعیاری بشه برحال این شبید نکته دیگه که ارز کنم ارزم طولانی شد شبیه این رو ما در بحث مناسب اونجا دیگه ما و اینا داریم ولی اصلا فعلی نیست اینا همش در اصلحیت و افضل بودن فعلی فعل مشکل آفرینه اما شبیه این رتبه‌بندی در مورد تشخیص اصلاح و غیر اصلاح هم در بحث های مناسب باید داشته باشیم اناکه که کمی مشابه ولی اون کاملا متفاوته موضوعش و سرش متفاوته خدا قبط الحمد والله رب